حالا مسئلی هست مهم حالا ما پور می شخصی و ما شاید تورم هم صورتی در داره انجا حجوم بیاره بانگه سیل روانی هست و داره کل مناطق می گیره حالا خود تورم حالا شوا با کسی معامله کردی اصر این است که پولی که در دیون معاملاتی باشه دیون معاملاتی یعنی شما معامله کردی با شخصی بهش ماشین دادید. شش ماهه، شش ساله، ده ساله حالا یا پولش ما فرار میکنه میره. حالا به قیمت ماشین بوده، اون زمان بوده شش میلیون حالا شده س... سی حالا... ها, ها شده حالا اون زمان شش میلیون. فرار کرد حالا ظاهر شده شش میلیونش آیت شما می توانید این پول او را به روز بگیری یا نگیری؟ این سوال هست در مورد این مسئله بین خود اصحاب نظر و علماء اختلاف است. حالا این جماعاتی از علماء بی که فقط همین پولی که در دیور معاملات در معامله کردی کالا دادید دربت و دربتاخیر می داد و کلم پول بی ارده شده می توانی قیمت کالای کارابین خنوز بگیری نه پول را هم کالا بن حساب می کنی و دوباره می حالا این راهی است که بعضی علما پیشنهاد دادیم. اما هنوز رأی قطعی نیست قطعی نیست به جای این رأی حالا ای نظر خود ما است نظر ما این در فعلا از این راه استفاده نشه استفاده نشه بهترین راه این است که ما جلو تورم بگیریم تورم جهانی رو حالا به صورت می سینجم پشتوان پول رو دیگه می کنن پشتوان پول هم در حال حاضر دلار هست اون کشورهای تورم دن چون پشتوان پولون خیلی قوی هست دلار دارن حالا ما که نداری همیشه داره نوستانهای تورم قرار داریم. حالا بهترین راه این است که از این سود ما در بیاییم چون به اون سورت قطعا به حرام می رسیم و کم کم دیگه راهها مشکل میشن، حالا بیاین بیرون بهتری غایین است که معاملات ما را در حال حاضر با طلوا دالار بکنیم مثلا ماشین می‌خرید روش بی آقا ماشین ایمان مثلا پیجو هست پی میلیون تومان آقا تقریبا ما که یک عدد 8000 دلار قیمت ماشین ما هست و هزار دلار قیمت ماشین ما هست حالا اون زمان شش ماه می‌خوای 6 ماه بعد به شما دلار میده یا دلار میده یا دلار بنل خروج میده این جایز است چرا حدیثی دارین حضرت عبدالمعن ابن عمر رضی الله تعالی عنہ شطور میفروخت خریدی فروج میکنه گفت یا رسول الله من میخرم با دینار و پول میگیرم با درهم یا میفروشم با درهم پول میگیرم با دینار جایز نه فرمودن که همون درهم که میگیری همون زمان درهم چقدر بود میتونی اون رو به اصطلاح دینار میگیری ایک ارمیتونید یا شما معاشر میفروشی با چی بفروشی با طلا مثلا محاسبی میکن، آقا 3 میلیون 3 میلیون پیجومه، طلا میشه؟ تقریبا در حال حاضر میشه تقریبا 200 سی, سی گرم طلا. در حال حاضر 200 سی گرم طلا. آقا ماشین ما شش یک ساله 200 سی گرم طلا است. اون زمان من طلا بده سر رسید چیف رسید یا سالار از او بخواید یا, یا قیمت سالار بخواید این جایزه از هراید بیرون همیشه کاران جنبیدی یا با دلار معامله کردی آقا من دارم بهتی کالار میخوشا حالا فرند معلوم همیشه اشاره کرده کلیم کور آف بکنه پس من ابری آقا کالای من ماشین من منزل من یا شد درم مددار نیفروشا با دلار فرند حساب کشی مالند درم فرند فرن توسطشون هست قیمت دلار هرود علامیه مثلا قیمت دلار در حالا تومان است حالا این فهمی آقا مثلا ما داریم میلیون هر قرن حساب کنم تقریبا علما به حالا به باشه شیش میلیون تومان 10000 دلار هست. آقا 10000 دلار قیمت ماشین مالی اون روز که داری میگیر یا دلارو بگیر یا دیگه هم قیمت رو بگیر شرعی هست و هی اصلا در گناه وارد نمیشی نیاز به خروج نیست مهریه هایی که میذارید برای دخترانتان هم قیمت روزه دارید چرا در با قیمت روز بچر درگیر گیر میشید سکه بذار سکه میذار طلا بذار که این طلا ما هست همون چیز در اسلام بوده قبلها بوده همین چیزو بذارید هر زمانی که بخان بگیرن طلا میگیرن نقره میگیرن دختران هم به طلا میرسند و شما از گورا بیرون این بهترین راهه این انجام میدهید سای کو دهی من در بازار بیره و با بازار منو تو هستی کسی دیگه نیست اگر معاملې وکنی بمونګه دارام ابلاغ وکنی اگر از رازم روز به بال روی معیار دلار یا معیار خود به سبب طلا بی فروشی مینويسې کی قیمت واشین مبلغ اینقدر دلار درو دلار مینويسې یا طلا رو شش ماهه یک ساله نه انتباهش که الله مسلی مشکلی نغار اما در خود این باشه